Thank <laughs> you. باز باستم ناس کنی نه تو فکر کردی یه بچه پاس زن تو بمانه میخوری دافی جیگر و چی میگی دوست داری باشی پیشم میخوام بخونم تا سهره باز بره بالا بیشتر ولی امشب شب به جمعست حالا بیگ پیشم ای سیگار لعنتی کم بده حالا واس من تا دختر حرفم و خیلی رفت بگم حالا وسط من وقت ندارم کیگه بیست و چهار ساعت خرابم توی خیابون بس کن. ترسم. مردم میگی سبار کن بزن چ کبوت یا ماچت کو که جوشه کبوت از این بحث تو نشیم و بشستیم بهش هم بدونن اینو چه کسی نوشت ما مست و پاتلی با دست و پا میریم تا است و تا رخ را دست و پا کنیم تا بری فضا وقت 24 ساعت فکر من اینه که بگم چی دیدم که ندیدی تو که چیزی بخونم که نشنیدی خواب پس مشتی بی تو فاز نمیجه پس شب با ما باش تا بخونم تا از سر تا پا ها کارمون نیمه تو چه ساعت رود فاسار حالمون دیوونتر میشین ما با سرعاعت رو داستان ما رو همه میدونن میشن باات با قدرت رو باشار با من من پار کارم تو چه ساعت روز. تو این سال کاری من پام به جام بود چند پولم و کردم من کام به کام دو از بود بودم تو کار تا تو خواب من در حال نوشتن رپ هر دم میخونم تا بمونه هم طرف دار بیفتن بجونه هم دشمن بیشتر تشنشه بخون من منم مثل فش بشه مهمونه تو نه دیدی جایی و کم دیدی شاید مثل من کسی رو خندیدی خندی با من رپ 24 ساعت خواب دیده من و آسمونم رو ابرا تاب منو من از ایش گیدی دیگه، پس حواسم هستش به این که دست نزارم اونا من از هوا میان میام پایین تا وقتی دیدیم بگی ناخدا خدا اومن. با سختی ببین بگو یا خدا اومم بعضی ها میگن شعود بازم همه میدونن که نوبر کارم دشمن و همه کی دنبال ما منم داره میشه دنیا به کامم ساعت روز تو پس این نهنگ او گوش کن دوباره با من بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز پاسداره حالمون بیبونه تر میشیم و با سرعت نور داستان ما رو همه میدونن میشن مارس با اونتت مون باشداره با من من پاسداره کارم تو 24 ساعت روز بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز باز داره حالمون دیوونه تر میشیم ما با فرقت نور داستان ما رو همه میدونن میشن ماس با قدرتمون مور باشار با من من باز تو کارم زو 24 ساعت رو